الرحمن <سؤال> الرحيم لله رب العالمين و سير و فهض بعد مخصصه کردن و بعد در رسول شیعه همه این آنوان آمد و در رسول شیعه وقتاً بعد شیخ انسانی بعد ازیشان شهرت در حوضه ما پیدا کرد به خاطر و سایه شبید این وقتاً توی بحث براعت آمد و آنوان فهض دیگه توضیح هایش داده شد و اصلاح انصافاً با ترمونه در این مسئله معروف میشه مراد جدیشون فهضه از خصوص مخصص نیم و همین فهضی که مشهد در احکام میخواده و بعضی فروع مسئله را هم یعنی به مناسبت هایی تو بحث اجتها تقریدم دارن مثلا در آنجا بحث دارنی که اگر در مسئله فقیه سآل شد و فهض کرد در عدد فهض کرد و جواب را بعد از 6 این شیش ماه دیگه یک سال دیگه همون مسئله سآل شد آیا به همون فص ساابت اتفاق کنه یا دو متر بازفرصله کنم؟ این دا بیانی ما آنجا اشت از ما ما. به این دهی در, هم در, در همون مسئله فص اقتصااس به عنوان محص نداره. اون بحث کلیست کلیست این بحث کلی در قابل کلی و درست هم این مسئلهتهیح فص باید بشه؟ حالا یا ب این سیره قطع کوقاینه یا ین این میژ یا به این مجموعه برخورد ما با اهداام شریه این شده؟ نکاتش ممکن نکات مختلف باشه اما مطلب قطعیست یعنی بدون شد هیچ حقیقی هیچ مشهری به, به عمومات اطلاعات اصافت الحقیقه اطلاع اطلاع اصافت عدد نفس به اینجا به حصول تمثل نمیکنه مگر بعد از فخص در عدله اصلا گاه گاه می در عدله به این نتیجه میرسونه که اینجا مثلا مطلب هست من از کنم این مثال رو از که مرحوم استاد خلافت مشهور در مبانی تکیل من های سوزید دادن که در بحث لبا دو طریقه یک طریقه که اللایت یختن که مطلبه یک طریقه داریم که اگر محسن باشه یختن خب مشهور ما وقتی تونجه که من بودم جادی شما همونشه فتواد که مطلبه یختن و که نورم طریقه رو باشیم خرمی که من مطلع رو برمقیل ولی تا در خصوص محسن برموندن اون در اونی که دیگه یخ نم از روایات ما اینجا اما الان در کتب اهل سنت اینجا من در حساله ای از جلال سیوتی که در کتاب الخوابی فتا بیش شده در اونجا به نقل از ابن عدی که معروف همه بوده دان اهل سنت صحاب کتاب رای هست من جعفر محمد صلی اللہ علیه قَالَ اللَّهِ تِيُخْتَ الْقُحْسِنَ عَمْلَبْ این مسلم ما الآن دو سه برای دو سه از امام صادق کرده با تصریح بینج قُحْسِنَ عَمْلَبْ يُخْسَنَ فشوای اصحاب ما هست اما برایت بشینیم برایت فشوای امام روایت نیزونه سارو مستان به قرآن این خوبیه پس در هایی ما با هست از باتا از وجود روایت در نوشون احبه سننه که در کتوره به مشهوری ما یه چیز بخص روجیه چیز دیگه اون که نست ما رو مستان بخصیم رو بخصیم رو بخصیم بلدن اینه که اگر روایت ثابت بشه پس اون روایتی میگه الله رو یکتریم مطلب میدید به حالا آمونه تسریم داره شما با فحث خودشون به این نتیجه رسیدید که اگر در روایتی تقیید به احسان شد معارض میشه نه که آمون خاص مطلب و معاییت میشه بحث مطلب و معاییت مدن این توفیادش رو همه این زیاده و از خیردم یک مثال هاییم سابقه زنم که ظاهرش مثل اون لباسه در نمانه در حریف ظاهرش تخصیصه لیکن در واقع تخصیص نبود و نذاب این نقطه رو در قبل ما الان در فکر خودمون به خصوص چون فکر به این آوانه اخیر تا حد زیادی جدا شده از و به حد سنده اتصال و ارتباطه با اون خب یه چیزی که الان ما می‌بینیم حتی در لسان رو ها. اما که خوب دقیقا کنه در تخصیص نیست بحث فحصر آن مثال دیگر مشهور بین فوق ما این است که احرام قبل از میقاد جایش میز روایت هم داره توی داره املا من اراده از عمرت فیره وقتی بخواد از جاونده مثال صابت ها باعث و علاق میرسده فرس کنید مونده از ماه رجب سباخل ماه رجعه و نرسیده به نها روز دیگه میراد میرسه میرد همون جوان احرام برنده ولو قبل از مقاته ولی ادراک عمره ماه خب این الان تو رواییات ما تو فتاهایی ما به صورت به اصطلاح تخصیصه لا یه بوضع احرام قبلن مقات الا منحراد یقاع عمره فی رجعه و با این مثل این کلمه از کلمه توی وزن داره مثلا با لغت تخصیص آمده تو خود رواید با لغت تخصیص الا لمن ارادل عمر را دیفی رچم خب ما الان تصوره ارشدادیه ما این است که این تخصیص فتوان بر همین است و مشروع در فتوان بر همین است خب یعنید باید که جاره مثلا دار احران اندام نالمواقیت نتی وقتا رسول الله یا مثلا نایم بقی لکن اندام نالم التي رآها رسول الله الا ان يكون الا لمن اراد العمره بي رجعه البته خود اهل سنت این مضمون و اصل این مضمون ندارن ولی بحثو دارن اهل سنت این در بین اهل سنت این بحث هست kia نه کلا اهل سنت مشهورشون احرام قبل از میقات جایز میدونن البته اون که آیا کی قبل از میقات احرام بست پیغمبر نسبت نمدم در فتح فلسطین از بیتون مقدس احرام این هست در فتح آمای صاحب اشمالم بود و که قصه شده در وقت زمان عثمان شد که سرسده ایجاد کرد در ساخر اون فرانه را کلیز در مثل همونی در خراسان بود نمت کرد که اگر خراسان رو فنس بکنه از همونجا جا احرام ببنده برای ممرت. و فکش شش ماه رو تو تو بیابون و سرما و گرما و دوالی و فتح خراسان کرد از نشابور دارن احرام بس برای عمرت مثل همونی اثمان بود وقتی به مدین رسید عثمان باش. دستاته دید چی کنه که چی به تو احرام بودن این بحث گنده شد عثمان عقلش این شد چه دایره احرام این ضمنه ماوقی که در وقت آرسوند قبلا نمیشه احرام بس اون یکی عقلش این بود که اشغال ندادن این بحث از اون زمان یه دگه تو قول معروف مونده آ یعنی دیگه واقعیه وزا شد عثمان که نمیشه اون میگه میشه بعدی ها غالباً به خاطر فیده عمره ها رو گفتن میشه به این مؤمن هم نسبت دادن که میشه شیعه یه که انجام میشه در سنی ها در کوفه احرام بیرستن برای عمره حتی بعض از روطان مثل ابو حمزه سومالی داره که احرام بسته بود که وقتی از در مدینه شگید پودساشون رو افتاق برد و ترک داره از اون چیز رو از کوفه احرام بسته علما دهی که گفتن نمیشه احرام اعلان المنا، حالا من نمیخوام وارد شرح این قصه و طول و تفصیل این قصه بشه. از علماشون مثل ابن هم موافقه خیلی مفصل بحث کرده ابن که خودش موضوع خیلی مفصل بحث کرده. در نتیجه گیریش اینه که لایز احرام قبل المنا در روایات ما هم از امام صادق همین این قبل رسول الله مادر نکردن نه البته مضمونش که اندام‌ها دیگه که بر این عثی اون شده چون این متواتر دیگه پیغامت تا یعنی 5ش یک چیز معنی کلامی اهل کلامه هزار واقعی به طوری که اون نشده بود اون مواقیت دیگه رو پیغمبرت حالا چه این کردن در کده سفرش عمره انجام کردن کده سفر هیچو شب قطعا از میقات اونم میقات اعلی مدینه که زلوه باشه بقیه سفرها اله بحث و داره در خط مکه هم قتن به مکه شدن برای اولین بار این چند باری که بر کلن بار به احرام و کلا مکه شدن یکی در سال افصم یکی در سال حجۃ الوداع یکی بعد از و انجام دادن. یکی هم همین هجت رو کل مراقب 20 که وارد مکه شدن در این ورود که داشتن مسلم در فتح مکه با سلاف بودن احرام نبستن نه بودشون نموستن شدن سال همون سال هشتم بعد فتح مکه و سال دهم ده که هجت بزار باشن با احرام وارد مکه شدن حالا از کجا الان اهل سنت ارز کردن و فاقل عثمان عقیده دارن که دیشون شون نهر مشهورشون مشروع شون اون هست لایل لا بزر احرام قبلدن اما هیچ کدوم از اونها تفصیل بین ماه رجب و غیر رجب و اهل رجب بقدر بکن که از سوال اهل سنت این احتمال که ماه رجب با غیرش فرقی داشته باشه وقت ما در بباریت امام ساده نه چند رفتن عرض کردن این نکته ایست که اهل سنت یعنی شون باشد داریدشون باشد باشد داریدشون باشد باشد محمدی مطلق نرحب کردی از کجا نرحب کردیدشون هیچ که در صحابه از تارید مرسلا مرسلا این رسول الله نرحب نکردن الا من عرام عمر در فی این شما از کجا این استثناء این تخصیص رو از کلمه کسی که ناسه کتاب محل های محضنیشون خیلی مفسد صفحات زیاد در این مسئله رو بارده اختیارشه میگه داره زول احرام خیلی مفسد شد خب هیچ کدام از اون ما هم تفکیق بین ماه ها تخصیص و محرجات نداره این این مسئله که در این حالی که بحثیست در حصول و در شد تحصیل داره در عرضه فرحله بیت در دنیای امروز هم تحصیل داره این مشکل کار ما وقت این مطلب در این روایتی که ما داریم در یکی از روایتاش این جو آماده فهمنده نزه عمرت و رجب منقبتن این با این تعلیل همه اگر یک خریف این تعلیل به قصد بکنه با این تعلیل میشه که این اصطلاحا اون تخصیص و نبوده حالا این چی بوده؟ که از جهادی که با عنوان فرمن همیشه ارز کردند در معارض دینی اولین چیدی که شروع شد در دنیا اسلام فره بود مثلا اون سالهای پنجه و شست ما فقه های سرقه مدینه داریم فره اصلا در دنیا اسلام اول فره شروع شد این واقعا کار خوبی بود سباحت و داد به سارت و بسیارت دردی و تفکار دردی اول شروع کردن اواخره قرار بعد از سر سال اصول را شروع شد و از 50 سال 30 سال حدیث شروع شد پیش احل سنت پیش ما نه حدیث چیز دیگر داریم برای از در دنیای اطلاع به طور کلی اول فهم شروع شد و این کهی خوب بود یعنی واقعا یک فشل درست یکی از محضلاتی که در فهم بوده که هموز هم هم بقاهای احل سنت از قدیم جدیل اختلاف داشتن یکی شکل بوده که گایی بین جمعه بین دو دلیل که می نتیجه نکیجه تخصیصی نبوده مثلا روایات فراغانی سنی و شیعه داشتن در استحباب مثواق زدن این دارش داره اما عده از حقای اهل سنت فرصدن در ماه رمضان استحباب نداره این زارش تخصیصه بیهر یستحب با استواق الله که شهر هیچ کدام از اهل سنتم رو رو از رسول الله نداره. یوساف رسول او پیروشی این چی بوده نوکسش این ها مورد ولی هزاران مورد ما در چی در واجبات در مستحبات و مکروحات به مطلعی سلمی هم ذراش گرد این روی که از علامات فصاحت میونه این یکی دو تا هم نیست حالا اون آقایی که گفته مثلا لایوسر و ساعه نه اینکه یک روایتی اصفیرا بده اون گفته جمع کرد گفته روایت داره که یوسر رسول از اونم رواز داده که بوی بد دهن سائم اندالله عطیب و اونمه خلوف و فمساله خلوف بوی بدی که در دهان نماز خب اگر سوا اون بو از بین میره این خب آمده جمع بین دوست بدی دلیل کرده شما به اثر زاره این دوست رو من برن ربطی خلوف یا خلوف فمساله احب و اندالله یکی بوده اینه لوله انشوق علاماتی در به سواق این میگه اگه این جزو دیگه با هم بررسی بکنیم پس برای خصوصیت تا بگه استحباب نداریم این یک نهر جمع بوده یکی نهر جمع بود ما در مساعد پس که مثلا نوشتم استحباب داره نما در, در همه اروند داره اولا در موادی که انتظار جماعت بگشه مثل جماعت یک ساعت بعد تشکیل میشه به حاضر جماعت اول رخ نخونه با جماعت بود. این دقیقه روایت ندارد که آران آمده هم مقایده اون عدله اکمال اول وقتی گذاشتن مقایده شدن عدله کمایت هم گذاشتن عدله جماعت و عدله اول وقت میشه این همون حکومت نیست؟ نه این یه نوع تخصیص ها ازش فهم میدن یه نوع جمعه بین عدله هست بیدید چقدر فهم میکنه نتیجه؟ یه دفعه شما دنبال این این که باشه که ساهم ثواف استعمال نک فقی... اصلا این ها که می گفتن فقیه علامت فقیه همین بود یعنی فقیه کسی روی که با یک زرافت و با یک بصیرتی بتونه بین دو تا دریجه هم بکنه و نتیجه بگیره اینه که در معاله مخوندین الفرط و الفرمیز الفرمالهاد که در مفرادات آخر رو بزورد صحیح شمانه فرم اون دقیقه نظر اون زرافت فکره اون انبیشه یه اینا میادرد میگفتن هر کسی رو فقیه ندونیم فقیه باید دارای یک دراته و لذا بعد از اینکه که ثابت میشد فقیه با عنوان یک نظر فقیه از او قبول میکردن مثلا به نساط ما چون معتقدیم احلوه پریقت سنن رسول الله وجود داشته وقتی این عبارت رو در اون زمان یا همین زمان در صفقه های احل سنت میدادیم اینا میادرد میگفتن که امام صادر در حقیقت جمع کر یه دلیل که میگه لا یلبس الا من المواقیت که به بر جل مواقیت یه دلیل هم که تاکید بر عمره رجب بده. مختصا این پس تفسیر نشه. دلیلون مشکل است شما با اهل سنت ندارید. شما با این طرز اهل سنت میگین این احادیث رسول الله کجاست؟ چرا ما صادق شما یک که از رسول الله نرد که نه این در حقیقت یک عمل فقهای اهل سنت هم میگن. این عمل بوده. راسهغیش ورز این کارو؟ راستاً خب چه یک فقیر میاد و می گفت نه عدل الهی ثواب باحال حال خودش مفهومه باقی اونم باقی یه دایی گفت نه عدل الهی اصلاً دیگه نمیگیره چون با یک فقیر میاد میگه اول صبح ثواب بزنه اشکال, اشکال داره عصر بزنه اشکال داره. چرا میتونن اول صبح علی بوی بد نگیره دایی؟ میشه عصرو بگیره؟ اینا هیچ روایت نمی. اصلا فقیر معناش اینه مثلا معنی فقيه و لذا این ولایت ها لزمی جلایت باشه ولایت یعنی صحت رجوع به فتوای فقيه این ولایت تقریبا متفوان علیه بود مثلا در بعضی از اخبار و مواقف اون چین ولایتی فقيه تو حتی ولایی فتوام نداد لذا میگن هر شخصی خودش باید مراجعه کنه به روایت همه روایت روش بذاره تعرضش هم باید به روایت تعرض مراجعه کنه اینا اعتقادشون در از اخبارش شاذهن توی شیعه که اصلا رأی صریح و آنانی رأی حجت می اصلا معنای حجیت فتوی فقیه همین بود فرق بین فقیه و غیر فقیه هم در همین بود اگه ممکن بود که انسان ابا همین معنا رو بگه میگه فهنبر گفت خلوف فهم سوال پطین میگن نه چون چون صریح نیستی اون ذرافضا صحن و فهم نداری هر ذره حجیت نداره اصل نکته حجیت فتوی فقیه این بود پس اگر این روازو جسد که این مل عمرت رجب فضلن و منطبتن این رو شما الان داریم در اهل سامنه هیچ است اشکال نمی کنه خیلی واضحه و بدهیه از شما سآل نمی که این رواز کجا بوده همون ساده چایی تخصیص نب پس اصلا عوض شد اون روایت از راجع بله روایت از حج رجب رو زیاد نقل نکردن ب... نه دارن چون عمره‌ای که در جاهلیت او در جاهلیت حج و عمره رجب بود اصلا دیگه عمره دیگه نمیاد. تو بله چرا به خدا من خودم هم گفت این دفعه در من عمره رمضان هم ما اون روایت رو نداریم چرا نه روایتش اون رواد دارد بر ترس یه رواد واحد از ما داری که ما اما اون دارد از تردیلت نمی کنه عمره در جاهلیت نظر مثلا در جاهلیت عمره نامره عمره و ولذا ماه رجل و ماه حرام قرار دن. چون در اصل کشت کشتاری که بود اگر ماه حرام نبود کسی می شود این بیاد تا بیاد تا مرکه او برگرده هم از اون عقاس البلاد نمی آمدن بدین شما ماه حرام رو مثلا آمندن سه ماه قرار دادن حدود یک ماه و نیم کمتر یک ماه و ده روز قبل از اعمال هنچ یک ماه و ده روزن برزار زاد ماه ماهران روز اعمال حرام, حرام. در حدود نصلا یک ماه و ده روز این چهه روز حساب بکنید متعارفشون در روز سال فرسان حدود 50 کلومت بوده شهر زردات پنجابی حدود 2000 کیلومتر تا مسافت 1800 کیلومتری مکه می اومدن برای حج چون مکه در نظر بگیرین اما در عمره ماه رجب حدود مثلا فرضو 10 روز 12 روز 12 روز 500 500 کیلومتر 900 کیلومتری نمی اومدن برای عمره اساس کلا عمره متعارفشون عمره رجب بود یعنی هر وقت صحبت و عمره میشد واسه عمره از عمره لله عمره سوزیش عمره رجب بود به اندازه ماه حرامش اگر ماه حرام بود میترسن بیام بیرون چون طبیعت این بود تو بیونی کسی تنها بود، میخواستن اشیای دروستون میخواستن اعمالش میگیره. میگیرن که از مال خاطراتش روشن اون جهانگیر نوشته یک شیخ ارشی عکسش هست این شیخ ارشی آی شده من میگو ما آدمای شریف هستیم ما مال اموال مردم نمیریزیم ما میکشیم بعد اموالشون رو. وظیفه میکنیم ما با شرافت هستیم از زمان بزرگواریه حالا اینا به شگ اول طرفی میکشتن بعد اموالش رو ما حرام رو قرار دادم برای این نسخه بی معنی. از بس خابز نشم چون این شد پس بنابراین این خب دقیقاً این در حقیقت که تصور این فحص کلی است در احکام و معنی شو که ها دیغوها فهم نکنه جوازهای دیگر اولا این قطعی یعنی این قطعی است در میان اون ها اگر کسی فتواهای فقیه و حجت میدونه این قطعی است که این فصا باید مستند به فحص و مراجعه ادله به قصد این قطعی است به هیچ نداره ما حالا آقایان یکیشم را یک سوال هر روایت امام باقر با رو هستم بیاس شما شعر جان امام بیواس بیواس نیست این جمع بین عدل فقط فرق اشینه اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید این فقط فرد فرق اشینه که اونها روی خیالات و خودشون جمع شدن اهل بیت اون راه صحیح رسول الله مویا یعنی ذوغا یعنی امام علی السلام طبق ترقیاتی که از رسول الله دارن میفهم این رو نکس رو برای ما بیان میکنن که در مجموعه روایات رسول الله فضل رجب بر حضمان قبل مقدمه ما این رو فرق ما با اهل سنت اینه ممکن است یک فقیه پس مالکی مثلا بگه ابو حنیفه ما فرقمون با اونا اینه که ما میگیم به استناد فهم ابو حنیفه و مالک نیم تونیم بفهمیم الان فرقیه با نسال میخوام بگم مثلا در نماز کلام و آدمی نباید باشه استثناء کردن سلام رو این سونیام داره این مسئله اینجور مطرح شده که ما نسبت بسنجیم بین عدله حجوب رد سلام و بین سلام نماز عدهشون قائل شدن که نه ادله سلام مقدم لذا تخصیص زنیم رد سلام نه عدهشون قائلن که نه رد سلام مقدم همه ترمی همه بحثی کلام گفتن رد سلام مقیده اون ادله کلام و آدمی رو در نماز تخ مثلا اون عدل کلام آدمی در جز سنن نبیه اما رد سلام در قرآن آمده پس رد سلام مقدم در روایات ما بدون اشاره آمده رد سلام بکنیم در روایات ما این آمده این نقطه آمده فرقش باید اولا ما از تهیور در میمیم اول سنن دید فسواش اون مقدمه کش میمیم مقدم ما در رواید تهیور داریم که رد سلام مقدمه به این اون فهم واقعی شریعت اونها است و استنباط خودشونه نکته اساسی و شبیه این حال در کجا تأثیر پیدا میکنه در حکایت اذان و اقامه الان ما در روایات خودمون حکایت اذان داریم استهوا و حکایت اذان وقتی معاذن اذان گفت ما امام فتاوا دادن که این استهوا شامل نماز نمی در حال نمازن در که ما در اینجا در نماز جایی نداریم. سلام الله اکبر الله <سؤال> این و مشکل ترش حیا علی الصلاه کلام آدمیه الا عشرا لا ذکر در قرآن در خود نماز داره اشا در نماز تو تشهد اون مشکل نداره یکی اشا در مشکل پیدا میکنه که اگر جزئیات در الله مشکل نداره خب آیان فتوا دادن که در نماز هم اگر بود یعنی شبیه از اون ما که قیاس نمی‌کنن برداشتن اون ادله ای که حکایت ازانه بر حال نماز البته ادمی هم احتیاج کردن گفتن حی علی الاخر الاش نگونه از آ... الفاظ ها تلا و الله و لا قوه بگه اون یک های رو برای اینکه ذکرش با نماز اونها با داشته باشه گفت ما یک جا دلیل داری در یک جا نداری آیا توانیم مثلا بگیم خب در اونجا فرمنایم تلام اشکاله اینجا هم بگیم حکارت اعذان اشکاله خب این که قیاس میشه الان فقهای های ما چپار میکنم بررسی میکنن روایات حکارت اعذان رو با نماز اون قسمت که ذکر مشکل نداره اون قسمت که ذکر نیست حیل اصلافش با مشکل برخور میکنه یا اصلا میگن نگن قولون یا بگن خوگله خب بگن یا بگن. میشه حقه اون رو باستی که در هم خالی شوحه ایست کیف ماکان بحثی که الان در اینجا هست این است که ما بگیین شما مثلا بعد ممکن است در اونجا هم امام صادق که میفرماند روایت که از رسول الله آمده این هم میشه بکنیم بگم نمیشه اما وقتی امام صادقه ام این اشعار به اون استنتاج فقهی داره لیکن این مطلب فقهی یعنی دوران هم یا با قول آه موسیٰ در بین آمو خاسمه دوران هم بین این دوتا شد اهل بیت مستنده بر رسول الله هم اونو مستند به اشتهازن فروش اینه یعنی در حقیقت اهل بیت میخواهم با این کار این اینه الهی است که پیغمبر اکرم در اینجا فرموندن عمر رجب بر اون سنت دیگه مقدمه فضیلت عمره رجب اینه خلاصه من بحث جمجور رو کنم. طولانی شد. خلاصه این بحث این شد که انصافا این, این فصل لازمه بحث از خصوص مخصص تمیز عموم داره و این هم بحث معروفی است که صریح نمیشه را هم هست به علم اجملی بگیم به سریه تفعیه بگیم به خاطر واقعه تاریخی که پراکندگی و تفرقی پیدا و به احتمال بسیار بسیار قوی این حالتی است که بعد پیدا شده در زمان رسول الله نبوده احکام واضح‌تر و روشن‌تر بوده احتیاجی به این قصصا نداشت حالا فعلا اینه، فعلا در طقه اسلامی ما این مطلب هست دیگه به همین مدار اکتفاق می کنیم وارد بحثای طولانی که در اینجا محلوم آقوم چند وضعه کردن وارد این بحث ایشان هم نمیشید. یه بحث دیگری رو که ایشون مفرح کردن این بچه جمع اقلایی هست نمیشه اگه اقلایی اسلوب یا داره که ما میتونیم اسلوبش اینه که به لحاظ عدله نگاه نکنم از مجموع عدله می کنم این اسلوب رو ما الان با یک فقيه هم بکار کار می‌بریم اما امام علی علیه السلام اجل و شانہ به نظر ظاهر گاهی میشه امام تعبیر تعبیر فقاهی است یعنی مراد واقعی اشارات بر سنت رسول الله وقتی میفرمایم که انله عمره در رجب فردن ان الله واضح که ای این تعبیر فقاهی میگه خب که الان فقهای ما گفتن وقتی عدله اول وقت نگاه می‌کنن با عدله جماعت جماعت مقدم بر اول وقتی. تخصیص هست. این تخصیص ای این جمعه جمعه ای نیست. این تخصیص نیست. تزاهم هم به یک معنی نشو مقام خالص. این جنب به اصطلاح جنب بین دلیلی که به حکومت میذار. این ما با مراجعه به لسانه عدله تازه اینجا مبانی مختلف باز میگن نا. وضو و نماز اول وقت مثلا اون عدلیش. این اختلاف معناست این مساله. این تخصیص اصطلاحی نیست که مثلا بگیم مثلا مخصص در زمان امام صادق (ع) یا مثلاً, مخلص. مثلا این فتوار اصلا قدم ها هم ندارن که اگر نماز اول وقت شد و جماعت شد اما فعال معاصر ما دارن بگیم مرموم صاحب قراره تخصیص در اموان به هم برانه چیدو تخصیص نیست؟ این نگه نفهم از مجموعه عدلت تخصیص هم اسمش نیست ظاهرش تخصیصه اما دقیقا در لب و تخصیص مصطلح نیست که بگیم این قدرت بوده. به استثبات استنباط بود تاخي مثلا با مثال آیا شراب رو میشه به یهودی یا مسیحی فروخت؟ خودش میتونه به مسیحی نخریده نمیشه. آیا شراب رو میشه شما بدین به یهودی برای شما بفروشه پولش به شما بدین اما اگه بده اشکال ندره مشهور مشروب قاهمی نمیشه. آیا شراب رو میشه به یهودی بدین، با مثال میخوام شما خودتون به یهودی بدین ازش پول قرض کردین، صد در شرابش بدین پول قرض حساب. میدن نمیشه آیا یهودی میتونه که شما شراب به توشه قرض شما رو بده از دیشتون موضوع بازم نمیشه چه برموانه مادر گفته میشه چه نه نه این که این, این مورد روایتی داشتیم روایت ما هم داره که میشه امام صادق میفهمانی میشه چرا رو حال این گفته؟ گفته چون پیغمبر اکرم جزیه را از یهود و نسلا و اموال توی پول شراب هم بود دخل بکنیم چقدر زریفه ببینید شما پول بدین شراب رو بدین به زمین بابت دینتون این درست نیست شراب رو به زمین بهتوشین درست نیست بدین او بجای شما بفروشه دلست. خودش خروف درست شما خروف پولش هم پتون گیره حالا نقضه این هم نگیره به شما ده تا پاتوق بدهکار بود، مدیون بود، جلو شما شراب فروخت، ده تا پتو گرفت به شما داد. این میگن درسته. او پیغمبرشون ما شراب فروش شراب. چون این کار چون که شما پولی که می‌خواید بدین به از جدیه از شراب نبره. خیلی شما از اینا کله‌ام ببینید که میگه از این از ذمه از پول شراب اشکال نداره لیکن فرمش اینه اونی که پیشنبر همیزه اونی که پولی که به این سال ماز میدهدن اونی که او فرس داد به شخصه نمی‌گیره. روایت داریم ما از امام ساده چند سار روایت داریم امام میفرمد اشکال نداره روشن شد این تخصیص نیست این فهم سنته این همون معنای اجتهاب به استنباه باشه الان در فروش شراب به زمی چند صورت رزمه حلس کردیم گفتن درست نیست درست نیست این یکی جه گفتن درسته چرا؟ چون یک سنتی پیغمبر داشته پول زمی را قبول میکرده بله ولی پول خرید فروش شراب بوده, بوده. و بوده. پیغمبر اکنه نفهمونه که پول شراب بذاری پول میتر بذاری کنار هم پول و غیر پول و میگه مقصد در اون زمان شاید پول کمتر دار گندم میگردن گندام پیغمبر گندام دارن جزی از نا قبول دقیق فقط نکته اینه که اون سنت رسلا تو جزیه بود دین شخص به بهت مال بود این فریق چه کرد؟ گفت دین شخصا به شخص دیگر هم بارده بود اون تحدی نکته ای اینه ممکن است یک فقیر سندی بگه از این موردم تعدیل میکن. فقط بین بریتون ما بین شخص رو شخص نمیشه اما ما چند تا داریم که میشیم به قطعه اون یه یک نقطه خیلی مهم میشه اون رواید هم که داریم توش نداره زنیه ام رجاله با اش رو و پولشو بانا هرز امام فنداغ هست فقه های ما هم گیر کردن چون زهایش که یک مسلمان شما شراب مسلم پول شراب رو به شما می‌دونن پس با این توضیحات ما در حق عرض کنیم با, با این مبنا اطلاق نداره هم خب. کلام امام صادق (ع) من همیشه عرض کردم کلمات امام صادق (ع) ده تا دو تا فرقات خیلی دقت یکی کنید که مدینه به خاطری که خود امام اونجا بودن یکی فقه کوفه به خاطری که شیعه اونجا بود یک مشکل فقه ما اینه امام در یک مسجد داشتن شیعه یه جای دیگه بوده و این دوتا فقه با هم مخالف هند پیش اهل سنت لذا این دوتا فقه فرح... آن مثلا شما پسوایی و اوزایی ما هم نیزید بگیرین چه این تحصیل میدونه فقیه شامن مثلا. اما فقه مدینه و فقه کوفه رو در نظر بگیرین بله به زمه مثلا روایاتی که داریم در این روایت مطلقه اده ایم از سوال گیر کردن چیکارشو گرویی؟ چیکار کنی تخصیص هم هست یک نفر شیعه نشسته شراب و فروخ جلو شما پولش داد به عنوان قضاع و وفار ظلمه مختلف روایت زاهر رو... روایت هم هم میزنیم، چاپش هم میخواب، که این کار اما وقتی این رو، این تو موطق نداره مالک، تو مدرونه یک کورا داره من مستقشم نهد ما متحیر بودیم تو مدرونه یک کورا این مال تصریح میکنه بگیم سم پس این روایت هم هر ظاهرش متلقه هم رو و معلوم شد که مراد جدی رواید اینه حالا نقل اصحاب مای کمی کموزیاد داره مراد جدی اینه که به هیچ نه پول شراب درست نیست الا در جایی که زنید در جلو شما شراب رو بفروشه و با پولش عدا دین شما بکنه خوب دقیق بکنه؟ و با پولش عدا دین شما بکنه ممکنه خب یه روی از هنگی من که مشغولیت داره این موشن ممکنه بخواهم بگم وقتی تره مسئله و زوایی ها شوشن شد نتیجه گیزه هاش کاری نخواهی روشن بیشه ممکن همین جو دارم از اینکه از زهران مشغولیت روید دو دو درس از سال نه چی میخوایم بگیم به کوچونی یه قایده برداریم. دیدی که اینا تو آشپز بو باشه. مثلا وقتی یهو یه دونه که شما هر کی بزن تو یا تو تاثیر یه قایده از پیدا می‌کنی. اشیاء کار ما همینا درس تمام درس ما در خارج بحثی رو درمیجیم که مرتب در تمام محله ما از بحث همینه یه بحث بودادی شد یه مختصری از بحث مونده دعوایی تایی نهای و مرمون در انحلاله همه ایش من مختصرشی بگم متولش و آن خودشون مارا کنم یه نقطه ایم سابقن عرض کردم در این کتابی که ما داریم که چاب شده از مردم و استاد و اون روزم ارز کردم ظاهرم معظم چاب هایی دیگه همین تو همین مسئله, همی مسئله که مربوم این چاپ شده کتاب به سلاح. در فتلمه بعد که مربوط میشه به صفحه مربوط میشه به مسئله چیز مربوط میشه به مسئله فهد در مخصص در این چاپی که من دارم صفحه 312 و 313 12 و 13 دارم این صفحه 313 اشتباه چاپ شده اون دفعه مرز کرده این شمارش 2313ه متاسفانه غلط 213 که چاپ شده اون هم غلطه این هم غلطه مطلبش درسته در افسته جابجا به این چون شما الان برسید ویدیوشون اگر کنید شب مطالعه کنید گیش میشین این صفحه 313 که اینجا آمده تو همین بحته امروز ماسته بحته بحته از مقدسه این در این صفحه 213 این شماره رو اشتباهوش داشته این صفحه 213 اون صفحه 213 باید اینج که خب ناقص چاب نکرده جاب چاب شده مات ملوس این سی سد و دوازده سیزده دی سی شده دیویس سیزده ما این صفحه این مال دیویس در صفحه دیویس این چاب میشه و تعین الواقع ال این صفحه این دو تا با هم دیگه مسیجی بعضی در یک چاپ درست کردن در یک چاپ درستش کردن در این چاپ معروفی که هست که چاپ نجعز افسد کرده نمیدونم تو چاپ نجعز هم اینی که من تو جا به جابجا افسد شده این سفر هم آ که بعجیل باشه صلی محمد و آل الله